حکایت کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردند و خدا و پیغمبر شفی آوردند و فایده ای نبود. چو پیروز شد دست تیر روان چقم دارد از گریه کاروان. لغمان حکیم اندران کاروان بود، یکی گفتش از کاروانیان، مگر اینان را نصیحتی کنی و موعزهی گوگی، تا طرفی از مال ما دست بدارند، که دریغ باشد چندین نعمت که زایع شود، گفت دریغ کلمه حکمت با ایشان گفتند. آهنی را که موریانه بخورد، نتوان برد از او به سیقل، زنگ، با سیه دل چه سود گفتن وز، نرود میخ آهنین در سنگ، همانا که جرم از طرف ماست. به روزگار سلامت شکستگان دریاب، که جبر خاطر مسکین، بلا بگرداند که سائل است تو بزاری طلب کند چیزی بده وگرنه ستمگر به زور بستاند.